سلام دوستان همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی را بهتون تقدیم میکنم به نام قصه تونتلابالد در زمانهای بسیار بسیار دور وسط سرزمینی پر از دریاچه خلنگزاره گسترده‌ای به نام والد وجود داشت هیچکس کس جرأت نمیکرد به اونجا پا بذاره گاهی کسایی که از اون نزدیکی میگذشتند در میونشون افراد دلیر انگشت چماری هم بودند که از سر کنجکاوی پا به خلنگزار میذاشتند اونا پس از بازگشت میگفتند که در بیشهای با درختای انبوه خونه ویرونه ای رو دیدن که اطرافش موجوداتی شبیه آدمیزاد مثل زنبور بر فراز شمن پرواز میکردند اون مردا بسیار کثیف و مثل کلیه ژنده پوش بودن. اوننا می گفتن علاوه بر این مردا تعداد زیادی زنان پیر و بچه های نیمه بهرهنه رو هم در اونجا دیدن. شبیه دهقانی که از مهمونی به خونه باز میگشت راه و گم کرد و در تونتلابال کمی بیشتر از حد معمول جلوتر رفت. اونم وقتی بازگشت همون حرفهای دیگران رو تکرار کرد و گفت: تعداد بیشماری از زنان و بچه ها به دور آتیش بزرگی گرد اومده و روی زمین نشسته بودن و بقیه روی چمن نرم به طرز عجیبی پیچ و تاب میخوردن. زنی عجوزه با ملاقه آهنی پهنی گاه به گاه زیر و رو رو میکرد. اما لحظه ای که خاکسترهای داغ رو به هم میزد و چهها مثل جغدای شب جیق کشان پا به فرار گذاشتند. و پیش از آن که کنند دزدکی بازگردن خیلی طول کشید. علاوه بر اینا یک یا دو بار پیرمردی کوچک با ریشی دراز دیده شد که از جنگل بیرون خزیده بود. اون کیسهی بزرگتر از خودش را حمل میکرد. زنا و بچه ها پا به پا در کنارش حرکت میکردن و میخواستن کیسه را از پشتش بردارن. اما اون اونا را از خودش دور میساخت. و به راهش میرفت. همچنین قصه ای درباره گربه سیاه با شکوهی به بزرگی کر اسب بر سر زبان ها بود. اما مردم تمامی اون شگفتیها رو که دهقان گفته بود باور نمی‌کردند و براشون بسیار سخت بود که تشخیص بدن کدوم قسمت درست و چه چی چیزایی نادرسته. به هر حال واقعیت مورد قبول همه این بود که در اونجا چیزای عجیبی رخ میده. پادشاه سوئد که این منطقه مردابی جزو کشورش بود جدیتر از هر زمان دیگه ای دستور داد تا بیشتر درختان جنگل افزون زده رو قطع کند. مردی که شجاعتر از دیگران بود به سوی جنگل پیش داخت. اون تبرش رو در تنه درختی کوبید. اما با ضربه ای که زد خون جاری شد و فریادهای جگرخراش جگر خراش انگار انسانی درد میکشه به گوش رسید هیزوم شکن وحشت زده شد و با تمام توانش پا به فرار گذاشت. از اون پس دستورها و تحدیدها باعث نشدن که کسی جرأت کنه پا به مرداب افسون زده بذاره. در پاسل این نچندان دور از تانتلا دهکده بزرگی قرار داشت و در اونجا دهقانی زندگی میکرد که به تازگی با زنی جوان ازدواج کرده بود. از اونجا که به گومگوها و دعواهای زن و شوهرها خیلی دور از انتظار نیست، زن جوان تمام خونه رو, رو روی سرش گذاشته بود و اونا تمام روز کاری جز دعوا و مرافعه نداشتن. مرد روستایی از همسر اولش دختری به نام السا داشت، دختری خوب و آروم که دلش می‌خواست فقط در آرامه زندگی کنه. اما نامادریش اوضاع رو به هم ریخته بود. اون دخترک که بیچاره رو از صبح تا شب کتک می‌زد و زیر مشت و لگت می اما موقعی که نامادری شلاق شوهرش رو به دست می دیگه واویلا میشد. دو سال تمام، السا از این بدرفتاری زجر کشید. تا اینکه یه روز به همراه دیگر بچه های روستا برای چیدن توت فرنگی بیرون رفت. اونا با بی به کناره ی رسیدند. والد رسیدن. جایی که بهترین توت روییده ها رویده بودن و بر سطح سبز چمن با رنگ سرخ فامشون می درخشیدن. بچه ها شکمی سیر توت فرنگی خوردن و بعد سرگرم پر کردن سبداشون شدند. که ناگهان یکی از پسرای بزرگتر فریاد کشید فرار کنید، با تمام نیرو فرار کنید، ما در تونتلا والت هستیم اونا مثل برق پا به فرار گذاشتن و دیوونه وار از اونجا دور شدند. همه فرار کردند، به جز السا که از بقیه جلوتر رفته و به پهنه ای از بهترین توتفرنگیا در زیر درخت ها رسیده اون مثل دیگران فریاد پسرها رو شنید اما هرچی کرد نتونست از توت فرنگی ها دل بکنه. با خودش فکر کرد حالا مگه چه اتفاقی میفته ساکنان تونتلاوالد از نامادرین که بدتر نیستن. اون نگاهی به اطراف کرد و سگ سیاه کوچیکی رو دید که زنگی ای در گردن داشت. سگ باق باق کنان به سویش دوید. دختری با جامعه ابریشمی همراه سگ بود. دختر گفت ساکت باش. بعد رو به السا کرد و گفت خیلی خوشحالم که تو مثل بقیه فرار نکردی. اینجا پیشم بمون و دوستم شد. ما با هم بازی های لذت بخش خواهیم کرد. ما هر روز برای چیدن دودفرنگی بیرون میریم. دیگه هیچکس جرئت نمیکنه نمی کنه که تو رو کتک بزنه. حالا بیا پیش مادرم بریم. و دست السا رو گرفت و اونو به دل جنگل انبوه برد. سگ سیاه کوچیک نیز کنارشون شادمانه واقباق کنن جست و خیز میکرد. آری چه شگفتی ها و شکوه مندی های مقابل چشمانه مبهوت السا بود. اون فکر کرد که براستید توی بهشته. همه جا پر از درختای میوه و بوته های پربار بود. پرندهها ها از زیباترین پروانه ها بر درختا نشسته بودن و ترانه هاشون فزار آکنده بود. پرندهها بدون حراس تو دستای دخترها جا خوش میکردن و اونا برای تلایی و نقریشون رو نوازش میکردن. وسط باق خونه ای قرار داشت که شیشه و سنگای گرانبهاش میدرخشیدند. در آستانه در، زنی با جامعی گرانبه گرانبها نشسته بود. اون رو به دوست السا کرد و پرسید: تو از کجا وردی؟ دخترش جواب داد: "اونو توی جنگل تنها پیدا کردم و به عنوان دوست با خودم آوردم." آیا میتونه پیشمون بمونه؟ مادرش خندید اما چیزی نگفت. فقط با دقت سر تا السا رو برانداز کرد. اون از دختر خواست که نزدیک تر بیاد. بعد گونه هاشون نوازش کرد و به مهربانی از او پرسید آیا پدر و مادرش زندن؟ و آیا واقعا دوست داره پیششون بمونه؟ السا خم شد و دست زن رو بوسید بعد زانو زد و صورتش رو بر دامن اون قرار داد و حقق گریه سرداد. مادرم سال که مرده، پدرم زنده است، اما به من توجهی نداره و نامادرین تمام روز کتکم میزنه. پس تقاضا میکنم به من اجازه بدید اینجا بمونم. از رحمه مراقبت میکنم و هر کاری که بگید انجام میدم و سخنان نیکتون رو آویزه گوش میکنم. فقط نزارید التماس میکنم. نزارید نزد نامادرین بازگردم. اگه برگردم و ببینه همراه بقیه بچهها نیستم من اون رسم جون میکنه زن لبخندی زد و گفت بسیار خوب ببینم چه کاری میتونم برات بکنم و از جاش برخست و به داخل خونه رفت بعد دختر به السا گفت از چیزی نترس مادرم دوستت داره موقعی که درباره این موضوع فکر میکرد متوجه شدم که تقاضاتو برآورده میکنه. اون از السا خواست که صبر کنه. خودش هم داخل خونه شد تا با مادرش صحبت کنه. در این بین السا میان بیم و امید بود و احساس میکرد که اون دختر هرگز باز نمیگرده. کمی بعد اون السا رو دید که با جبهی در دست از چمنزار میگذشت و گفت مادرم میگه که امروز میتونیم با هم بازی کنیم چون که میخواد دربارت تصمیم بگیره. امیدوارم بتونی همیشه اینجا بمونی چون که تحمل دوریت رو ندارم. آیا تا به حال دریا رفتی؟ السا شگفت زده پرسید؟ دریا؟ دریا چیه؟ هرگز چیزی در این باره نشنیدم. دختر در حالی که جعبه رو برمیداشت گفت آه همین الان نشونت میدم ته جعبه ای پارچه یه صدف و دو پولک ماهی قرار داشت دو قطره آب روی تکه پارچه برق میزد دختر دو قطره آب را بر زمین ریخت در یک آن باغ و چمنزار ناپدید شدند انگار زمین دهان باز کرده و هر چیزی و بلعیده بود تا جایی که چشم میدید چیزی جز آب دیده نمیشد به نظر میرسید که کرانه آب به آسمون رسیده فقط زمین زیر پاشون خشک بود بعد دختر صدف و توی آب گذاشت و دو پولک ماهی رو توی دستش گرفت صدف بزرگتر و بزرگتر شد و به قایق کوچیک زیبایی تبدیل شد که دوازده بچه رو توی خودش جا میداد دخترا سوار قایق شدند. اما السا خیلی با احتیاط سوار شد. طوری که دوستش به اون خندید. اون از دو پولک ماهی به جای پارو استفاده میکرد. انواج قایق رو آرون به هر رو انگار دخترها در گهواره نشسته بودن. اونا بر پهنه آب پیش رفتن تا به قایقای دیگه رسیدن که مردایی آوازخون و شادی کنن اونا رو میروندن. دختر گفت ما هم باید ترانهای بخونیم. اما چون السا ترانهای بلد نبود خودش به تنهایی چیزی و زمزمه کرد. السا از ترانه هایی که مردم میخوندن چیزی سردر نمی آورد. اما متوجه شد که یک کلمه رو پیوسته تکرار میکنند. کیسیکا السا معنی این کلمه رو پرسید و دختر گفت که نام خودشه. اونجا به قدری دلگشا بود که دلشون میخواست تا زمانی که زندن همونجا اونجا بمونن. اما صدایی اونا رو به خود رو بچه‌ها وقت بازگشته. پس کیسیکا جعبه کچیک که تک پارچه ای تهش قرار داشت از جیب در رو و پارچه رو توی آب فرو برد. اتفاق عجیبی افتاد. اونا نزدیک خونه ای با شکوه وسط باقی ستاده بودند. زمین اطرافشون خشک و سفت بود و هیچ جا خبری ازاب نبود دختر صدف و پولکا رو در جعبه گذاشت و هر دو به خونه رفتن اونا وارد تالار بزرگی شدند. اونجا بیست زن با جامعه با شکو دور میزی نشسته بودند. گویی میخواستن به جشن عروسی برن در سمت بالای میز بانوی خونه روی صندلی طلا نشسته بود السا نمیدونست به کدوم طرف نگاه کنه هر چیزی که به چشمش میخورد از تصورش زیباتر بود اونم پشت میز نشست و مقداری میوه خوشمزه خورد احساس می کرد توی بهشته حاضران به آرامی صحبت می‌کردند. اما سخنانشون به نظر السا عجیب می اومد و از حرفای اونا چیزی نمیفهمید. بعد میزبان روشو و و به خدمتکاری که پشت صندلیش ایستاده بود چیزی گفت. دخترک که خدمتکار بیرون رفت و وقتی بازگشت پیرمرد کوچکی رو که ریشی بلندتر از قدش داشت همراه هاورد. پیرمرد در برابر بانوی بزرگ تعظیم کرد، و آروم نزدیک در ایستاد بانو با اشاره به السا گفت این دختر رو میبینی؟ دلم میخواد که اون دخترم بشه. مشابهش رو درست کن تا اونو به روستای زادگاهش بفرستن. پیرمرد نگاهی به سرتاپای السا انداخت. انگار داشت اندازه میگرفت. بعد به بانو تعظیم کرد و از تالار بیرون رفت. پس از شام بانو با مهربانی به السا گفت کسی که از من خواسته اجازه بدم که تو اینجا بمونی. تو نیز گفتی که دلت میخواد با ما زندگی کنی. درسته؟ با شنیدن این سخنان، السا روی زانو نشست و به دست و پاهای بانو به نشانه قددانی در نجاتش از دست نامادری ستمکار بوسه زد. بانوی میزبال اونو از زمین بلند کرد و سرشا نوازش کرد و گفت تمام سعی تو بکن که دختر خوب و برمان برداری باشی. من از تو مراقبت خواهم کرد و تو تا زمانی که بزرگ شدی نباید چیزی بخوای. هم که تمام هنرای دستی و بکی سیکا یاد داده به تو هم آموزش میده. خیلی طول نکشید که پیرمرد با قالبی از گل رس بازگشت. اون سبد پوشیده ای در دست چپ داشت. قالب و سبد و زمین گذاشت. مشتی گل رس برداشت و عروسکی درست و حسابی درست کرد. بعد در سینه عروسک سوراخی ایجاد کرد و تکه نان در آن گذاشت. سپس از سبد ماری بیرون آورد و اونو وارد بدنه عروسک کرد. بعد به بانو گفت، حالا به قطره ای از خونه دختر نیاز داریم. السا با شنیدن این حرف از ترس رنگ به چهرش نموند. چون که فکر می کرد داره روحشو رو به موجودی شیطانی میفروشه فروشه. بانو شتابان گفت، نه ترس، خونت رو برای هدفهای بد نمیخوایم، اما برای رهایی و خوشبختید، باید قطره ای خون بدید. بانون سوزن طلایی کوچیکی رو برداشت، اونو توی دست السا فرو کرد و سوزن به پیر مرد داد. اونم اونو به محل قلب عروسک فرو برد. بعد از این کار پیکره رو توی سبت گذاشت و قول داد که روز بعد آماده میشه. ما و همه می بینن که چه موجود زیبایی از کار در میاد. صبح که السا توی بستر ابریشمی با بالشای سفید نرمز خواب بیدار شد، روی صندلی لباس زیبایی رو که برای شما کرده بودند دید. دختری برای شونه کردن گیسوان بلندش با پارچه کتانی بسیار ظریفی که در دست داشت به اتاقش اومد. اما هیچ چیز السا را به اندازه دیدن یک جفت کفش کوچیک گلدوزی شده خوشحال نکرد. اون کفش را با علاقه بسیار توی دستش گرفت. چونکه تا اون موقع بزرگویی نامادریش مجبور بود پا به به هر جا بره اونقدر هیجان زده بود که به لباسه زبر و که روز قبل به داشت حتی لحظه ای فکر نکرد گویی بر اثر جادویی در طول شب لباس کهانش ناپدید شده بود چه کسی اون رو برداشته بود؟ بله آهسته آهسته یادش میومد. اما می دونیم که اون لباسو برای عروسک مشابه خودش برداشته بودن. همون بدل اون که باید نقش اونو توی خونه روستایی بازی کنه. وقتی خورشید طلو کرد عروسک کامل شده بود و هیچکس نمیتونست بگه که کدوم یکی از اونا دختر واقعیه. السا با دیدن بدل خودش هراسون قدمی به عقب برداشت. با نوک متوجه حراسه اون شد گفت نه ترس. این پیکره ی گلی آسیبی به تو نمی این برای نامادریته و به جای تو کتک خواهد خورد. نامادریت هر که به میتونه می اونو شلاق بزنه. اون اصلا دردی حس نمی کنه. اما اگه این زن پلید روزی به خودش نیاد دو آدم نشه بدل تو اونو همون گونه که حقشه به سختی مجازات خواهد کرد. از این زمان زندگی السا تبدیل شد به زندگی معمولی ای شاد که توی گهواره طلایی زیباش آروم به خواب میره. نیاز نبود که کسی دائم مراقبش باشه یا اونو به زحمت بندازه. هر روز کاراش آسان میشد می شد و سالهای گذشته همچون رویایی بد محف می شدن. همچنان که در نهایت شادمانی روز به روز بزرگتر میشد کاملا اطمینان یافته بود که قدرت بزرگ ناشناخ ای پشت این شگفتی ها پنهانه. در آن محاوه تخت سنگ خارای بزرگی در حدود بیست قدمی ساختمون قرار داشت وقتی غذا که میشد پیرمرد باریش درازش به اونجا میرفت اون با میله نقره سه بار به تخت سنگ میزد، طوری که بازتاب صداش از فاصله دور شنیده می شد. با ضربه سوم خروس طلایی بزرگی بیرون میومد و بالای سنگ میستاد. هر وقت که خروس بانک برمیآورد و بالاشو به هم میزد، سنگ باز میشد و چیزی از اون بیرون میومد. ابتدا میزی بزرگ با انواع غذاهای آماده، به تعداد کسایی که پشت میز می نشستن حاضر می شد میز خودش به داخل خونه به پرواز در می آمد. وقتی خروس بار دو بمبان می تعدادی صندلی ظاهر می و به دنبال میز پروازکنان به خونه می رفتن. سپس انواع نوشیدنی های گووارا، سیب و دیگر میبه ها بیرون می و بی اون که کسی زحمت حمله اونا را بکشه خودشون به داخل خونه می رفتن. پس از آماده شدن هر چیزی و مصرف اونا پیرمرد دوباره به تخت سنگ می زد. خروس از نو بانک برمیآورد و میز، صندلی و بشقاب در وسط سنگ فرو می رفتن. این کار دوازده بار ادامه می و موقعی که نوبت به غذای سیزدهم می رسید، دیگه هیچ کس میل به غذا نداشت و به اون دست نمیزد. بعد یه گربه سیاه بزرگ پیدا می شد و نزدیک خروس روی تخته سنگ می پرید. ظرف غذا طرف دیگهش بود. اونا هم اونجا می تا پیره پیششون می رفت. اون ظرف رو در یک دست می گرفت و با دست دیگه گربه رو زیر بقل می زد. بعد به خروس می گفت که روی شونش بشینه، و هر چهار تا توی دل سنگ ناپدید می شددم. اون تخت سنگ نه فقط غذا بلکه لباس و هر چیز دیگه ای رو که توی ساختمان به اونا نیاز پیدا میشد فراهم میکرد. اوایل بیشتر اوقات موقع صرف غذا به زبونی صحبت میشد که به نظر السا عجیب می اومد. اما با کمک بانو و دخترش اون آهسته آهسته اون زبونو فرا گرفت البته سالها طول کشید تا بتونه به اون زبون سخن بگه. روزی از کیسیکا پرسید چرا سیزدهمین ظرف غذا هر روز سر میز میاد و هر روز بی که کسی به اون دست بزنه بازگردونده میشه. کیسیکا هم چیزی بیشتر از اون نمیدونست. بی تردید کیسیکا در این مورد با مادرش صحبت کرد. چون که چند روز بعد بانو خیلی جدی با السا حرف زد. خودت رو با افکار بیفایده نگران نکن. دوست داری بدونی که چرا ما هرگز سیزدهمین هم همین قضا رو نمیخوریم؟ خب، فرزند عزیزم، اون غذا برکت پنهانی صفر است و ما نمیخواهیم با چشیدن اون به زندگی شادمانمون در اینجا پایان بدیم. جهان خیلی بهتر از این میشد اگه انسانها بر اثر هرس و آز، به سراغ هر چیزی نمیرفتند و چیزایی رو به نشونه شکرگزاری از نمدهنده کنار میذاشتند. آز بدترین خطای بشره برای السا سالهام ثبات میگذشتند. اون حالا زنی زیبا شده بود. درباره بسیاری از چیزها اطلاع داشت. در حالی که اگه توی زادگاهش مونده بود هرگز چیزی یاد نمیگرفت. اما کیسیکا درست مثل اولین روزی که با السا آشنا شده بود، هنوز دختری جوون و تر و تازه باقی مانده بود. هر روز صبح هر دو یه ساعت مطالعه می و مطلب می نوشتن. السا همیشه در فکر آموختن دانش بود. اما کیسیکا بازی بچهگونه بچه رو بیشتر ترجیح می داد. اگه از یه سرگرمی خوشش نمیومد، کاراش و کنار می جبه گنجشو بر داشت و بیرون می تا توی دریا بازی کنه جایی که هیچ آسیبی به اون نمی رسید. اون اقلب به السا می گفت حیف که تا اینقدر بزرگ شدی دیگه نمیتونی با من بازی کنی نه سال با این وضعیت سفری شد تا یه روز بانو السا رو به اتاق خودش فراخند السا از این احضار شگفت زده شد غیر عادی بود قلبش تند میزد چون که میترسید که چیزی شرارتبار تهدیدش کنه. همین که وارد شد دید که چهره بانو سرخ شده و اشک توی چشماش موج میزنه. اون با عجله چشماشو پاک کرد. گویی میخواست اشکاشو از دید دختر پنهان کنه. بانو گفت عزیزترین فرزند. زمان جدایی فرا رسیده. السا فریاد زد جدایی؟ و سر شب توی دامن بانو گذاشت و گفت نه بانی عزیز هیچ چیز به جز مرگ نمیتونه ما رو جدا بسازه شما روزی آغوشتون رو به من گشودید دید حالا نمیتونید من از خودتون دور کنید بانو جواب داد آه آرون باش دخترم تو نمیدونی برای خوشبختی هر کاری که میتونستم انجام دادم، چاره دیگه ای هم ندارم، تو موجودی میراه هستی و روزی خواهی مرد، پس بیشتر از این نمیتونه اینجا بمونی، ما کالبود انسانی داریم اما بشر نیستیم، هرچند فهمیدن دلیلش برا تاصل نیست، روزی همسری خواهی یافت که کاملا برا خواهد بود، و تا زمان مرگ با شادی و خوشبختی کنار هم زندگی خواهید کرد، برام بسیار سخته که از تو جدا بشم. اما این کار باید انجام بشه و تو هم باید تصمیم قاطع بگیری. بعد شونه تلاشش رو به آرومی به موهای السا کشید و به اون گفت که بره و بخوابه. دخترک که بیچاره لحظه ای نتونست چشم به هم بذاره. به نظر می رسید که زندگی مثل شب تیره ی بی که بالای سرش سایه انداخته. حالا اجازه بدید لحظه ای به عقب برگردیم و ببینیم توی روستای زادگاه السا این سالها چی گذشته و بدل اون چگونه روزگار گذرونده. این حقیقتی روشنه که زن بد هرچی پا به سن میذاره به نطرت پیش میاد که بهتر بشه. نامادری السا از این قاعده مستثنا نبود. بدل السا که جاشو گرفته بود چون دردی حس لگدی که شب و روز به سر و تنش تأثیری به حالش نداشت. اگه یه موقعی پدر به کمک دخترش میآمد، نامادری بدکار بر سر او هم حوار میشد و اوزا بدتر از قبل میشد. روزی نامادری کتک وحشتناکی به دختری صد و اونو تهدید به مرگ کرد. اون که خش خشم دیوانه شده بود گلوی پیکره دخترک و با هر دو دست گرفت و سخت فشرد در همون حال مار سیاهی از دهن پیکره بیرون اومد و به زبون زن بجنس نیش زد و اون بی نقشه بر زمین شد. شب موقعی که شوهرش به برگشت دید که جنازه زنش روی زمینه. بدنش باد کرده و از شکل افتاده. از دخترش هم خبری نبود. فریاد بلندی کشید، طوری که همسایه های نزدیک اونو شنیدن. اونا به خونش اومدن، اما کسی نتونست درباره اون واقعه توضیح بده. اونا گفتن تقریبا نیم روز بود که سر و صدای زیادی شنیدن. اما این ماجرای هر روزشون بود، پس یاد به اون توجه نکردند بقیه روز همه چیز آرون بود، اما هیچکس کس دخترکو ندید. جنازه زنو به خاک سپردند شوهر که خیلی خسته بود به بستر رفت و ته دلش خوشنود بود که بالاخره از شر زن آتش پارش که زندگی رو به اون تلخ کرده راحت شده بود اون روی میز تکه این نون دید و چون گرسنه بود قبل از اینکه به خوابه اونو خورد صبح اونو هم مرده توی بسترش یافتند بدنش مثل جسم همسرش باد کرده بود نونی که خورده بود همون نونی بود که پیرمرد توی بدن بدل دخترش قرار داده بود. اونا هم کنار گور همسرش دفن کردند. اما دیگه از دخترشون چیزی شنیده نشد. السا بعد از گفتگوی طولانی با بانو تمام شب گریه کرد و از دست سرنوشت ستمگر که اونو از اقامتگاه مورد علاقش دور میساخت، ناله سرداد. صبح که شد وقتی از خواب برخاست بانو حلقه نگین داره طلا در انگشته اون کرد. جعبه طلایی کوچیکی رو با نوار بست و به گردن دختر انداخت. بعد پیرمرد و فرا خوند. اشکاش پاک کرد و گفت که السا از پیششون میره. دختر میخواست سخن بگه اما پیش از اینکه گریان و زاران بتونه چیزی بگه و از بانو سپاس گذاری کنه پیرمرد سه بار به نرمی با نقره ای خودش به سرش زد همون موقع السا احساس کرد که به پرنده ای تبدیل میشه از زیر دستاش دوتا بال بیرون اومد پاهاش به پاهای اقاب با چنگالای بلند تبدیل شد بینیش مثل منقاری تیز شد و تموم بدنش و پرای زیبا پوشوندن به هوا برخاست و به سوی ابرا پرکشید گویی از همون اول اقاب متولد شده بود چند روز مستقیم به سمت جنوب پرواز کرد هرگاه بالهاش خسته می شدن استراحت می کرد رو احساس نمی کرد. از غذا روزی از جنگل انبوهی می گذشت. زیر پاش سگای شکاری با خشونت واقباق می کردن چون که خودشون بال نداشتن و اقاب از دسترس آنها دور شده بود ناگهان دردی شدید تمام بدنشو فرا گرفت و به زمین کشیده شد. آری تیری به سوش پرتاب شده بود. وقتی به هوش اومد دید به شکل اول خودش بازگشته و زیر بوته ای افتاده. چه به سرش اومده و چه جوری به اونجا رسیده بود؟ اینا براش چون رویایی عجیب بود. در کار خودش مونده بود که چه بکنه؟ جوانی اسب سوار از اونجا میگذشت. اون پسر پادشاه اون سرزمین بود. با دیدن ارسا از از پایین پرید و گفت آه، بختیارم بوده که امروز صبح مرا به اینجا که بانی عزیز. الان نیمی از ساله که هر شب توی خواب میبینم روزی تو رو توی این جنگل خواهم یافت. با که بیش از هزار بار از اینجا گذشتم، هرگز امیدم و از دست ندادم. امروز به دنبال عقابی میگشتم که به سوش تیری انداخته بودم اما به جای اقاب تو رو یافتم بعد السا رو سواره اسب کرد و با هم به سوی شهر حرکت کردند پادشاه پیر با احترام بسیار از السا استقبال کرد چند روز بعد جشن عروسی برپا شد در حالی که السا داشت تور روی سرش می‌انداخت پنجاه عرابه پر از وسایل زیبا که از سوی بانوی تونتلاوال فرستاده شده بود از راه رسیدن. پس از فوت پادشاه، السا ملکه شد و این داستان رو در زمان پیری تعریف کرد. اما این آخرین باری بود که از تونتلاوال دیاد شده چون که دیگه کسی چیزی دربارش نشنیده. کانال تلگرامی هزار افسان. داستان های افثانه ای نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام ای ای دی نشانی ویبلاگ ما